اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم, لعلكم تذكرون به نام خداوند بخشنده بخشایشگر این سوره است که آن را فرو فرستادیم و عمل به آن را واجب نمودیم و در آن آیات روشنی نازل کردیم شاید شما متذکر شوید. اززانیت و اززانی فجلدو كل واقعید من هما ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَتُمْ في دين الله اِنْ كنتم اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَتُمْ مِنَ المؤمنين. زن مرد زناکار تازیانه بزنید و نباید رعفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند از زانی لا یَنکِحُ إلا زانیةً أو مُشرِکةً والزانیة لا یَنکِحُها و لا ينکحها الا زان او مشرك و ذلك على المؤمنین مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است والذين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأتوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجلدوهم فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقُبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و کسانی زنان پاک دامن را متهم می سپس چهار شاهد نمی آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها همان فاسقانند مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند که خداوند آنها را میبخشد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و کسانی که همسران خود را به عمل منافی افت متهم می کنند و گواهانی جز خودشان ندارند هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است و, ان لعنت الله عليه این من و در پنجمین بار بگوید که لعنف خدا بر او باد اگر از دروغ گویان باشد و رأو عنها رأو العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد اربع شهادات لمن الكاذبین آن زن نیز میتواند تواند کیفر زنا را از خود دور کند به این طریق که چهار بار خدا را به شهادت تلبد که آن مرد در این نسبتی که به او میدهد از دروغ گویان هست و بار پنجم بگوید که قذب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست گویان باشد ولولا فضل الله عليكم ورحمته رحمته و ان الله تواب حکیم. و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه او توبه پذیر و حکیم است بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می شدید إن الذين <سؤال> جاءوا بالإفك <سؤال> عصبة منكم لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم مسلما کسانی که آن تهمت عظیم را انوان کردند گروهی متشکل و توت از شما بودند اما گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است بلکه خیر شما در آن است آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند و از آنان کسی که بخش مهم آن را برعهده داشت عذاب عظیمی برای اوست لولا اید سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسیم خیرا وقالوا وقالو, وقالو هذا افکم مبین چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود و کسی که همچون خود آنها بود گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار است لولا جاءوا عليه باربعه شهدا فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولائك فاولائك عند الله هم الكاذبون چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند اکنون که این گواهان را نیاوردند آنان در پیشگاه خدا دروغ گویانند ولولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افتتم فيه عذاب عظيم و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمیشد، به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما میرسید اذ تلقونه بیالسینتکم و تقولون بی ما ليس لكم بهی علم و تحسبونه و هو عند الله عظیم به خاطر بیاورید زمانی را که این شایع را از زبان یک دیگر میگرفتید و با دهان خود سخنی میگفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک میپنداشتیید در حالی که نزد خدا بزرگ است و اولائذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا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 يا عزكم الله أن لا تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. خداوند شما را اندرز میدهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایماندارید ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم خداوند آیات را برای شما بیان میکند و خدا دانا و حکیم است این <تصحن> الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون کسانی که دوست دارند زشتیها ها در میان مردم با ایمان شیوع یا بد عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند میداند و شما نمی ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و رحیم است مجازات سختی دامانتان را میگرفت. یا ای الذين الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم ما زك منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ای کسانی که ایمان آوردید از گامهای شیطان پیروی نکنید هر کس پیرو به گامهای شیطان شود گمراهش میسازد زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هرگز احدی از شما پاک نمی شد ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه میکند و خدا شنوا و داناست ولا يأكلن أولى الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند امورزنده و مهربان است این المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظیم کسانی که زنان پاکدامن و بیخبر از هر گونه آلودگی و مؤمن را متهم می‌سازند در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند وعذاب بزرگی برای آنهاست یوم تشهد عليهم السنتهم وایديهم وارجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتب میشدند گواهی میدهند که اومین وفییم و, يعلمون و يعلمون ان الله هو الحق المبين. آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می میدهد و میدانند که خداوند حق آشکار است. الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند اینان از نسبتهای ناروایی که ناپاکان به آنان میدهند مبرا هستند و برای آنان آمرزش الهی و روزی پر ارزشی است یا ای آنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ای کسانی که ایمان آوردید در خانههایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و, الله علیم. و اگر کسی را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد بازگردید بازگردید این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَلِي غُنَاهِ بر شما نیست که وارد خانهای غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما يصنعون به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند این برای آنان تا است خداوند از آنچه انجام میدهند آگاه است و قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ, آبائهن أو, آبائ بعولتهن أو أَبْنَائِهِنَّ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 او بني اخواتهم او رسائهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا او الطفل الذين لم يظهروا على عوراتهم و ب زنان با ایمان بگو چشم خود را از نگاه ح فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان کنیزانشان یا افراد صفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شدید وأنكحوا الأیاما منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم إن یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم مردان و زنان بیهمسر خود را همسر دهید همچنین غلامان و كنیزان سالح و درستكارتان را اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بینیاز می ساسد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است. وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكتاب مِنْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ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 و من یکره الله من بعد اکراه غفور رحیم و کسانی که امکانی برای ازدواج یابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بینیاز گرداند و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه قرارداد مخصوص برای آزاد شدن هستند با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس می کنید که بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید و کنیزان خود را برای دستیابی به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان میخواهند پاک بمانند و هر کس آنها را بر این کار اجبار کند سپس پشیمان گردد خداوند بعد از این اجبار آنها آمرزنده و مهربان است توبه کنید و بازگردید تا خدا شما را ببخشد وَلَقَدْ أَنزَلَّهَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كان لها كوكب دري ينقذ يُنقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّة لا شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَم تمسسه نار نور على عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يشاء و یضرب الله الامثال و الله بکل شیئن علیم نور آسمان ها و زمین است مثل نور خداوند همانند چراق دانی است که در آن چراقی پرفروغ باشد آن چراق در هبابی قرار گیرد هبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پر برکت زیتونی گرفته شده که نه است و نه غربی. روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعلور شود نوری است بر فراز نوری و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت میکند و خدا برای مردم مثلها میزند و خداوند به هر چیزی داناست فی میوتن اذِن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل چراغ پرفروغ در خانههایی قرار دارد که خداوند ازن فرموده دیوارهای آن را بالا برند تا از دست برد شیاطین و هوسبازان در امان باشد خانههایی که نام خدا در آنها برده می شود و صبح و شام در آنها تسبیح او میگویند گویند رجال لا ولا بیعن عن ذکر الله و اقام الصلاه و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکاة غافل نمی آنها از روزی می که در آن دلها و چشمها زیر و رو می شود لی اجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاؤ بغیر حساب آنها به سراغ این کارها می تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام داده اند پاداش دهد و از فصل خود بر پاداششان بیفزاید و خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی میدهد والذین كفروا کفروا اعمالهم کسراب بقیعتی یحسبو الضمآن ماء یحسبو الضمآن ماء حتى. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون است در یک کبیر که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد. اما هنگامی که به سراغ آن می آید چیزی نمی و خدا را نزد آن می آبد که حساب او را به طور کامل می دهد و خداوند سریع حساب است او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يا هم ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن افری تاریک است ظلمت است یکی بر فراز دیگری آنگونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده نوری برای او نیست اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّتِ كُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ آیا ندیدی تمام آنان که در آسمانها و زمینند برای خدا تسبیح می کنند. و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گستردهاند اند هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می و خداوند به آن چه انجام می دهند داناست و از برای خداست حکومت و مالکیت آسمان و زمین و بازگشت تمامی موجودات به سوی اوست ألم تر ان الله یزجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما ثم يجعله ركاما فتر الودق یخرج من خلاله وينزل من السماء وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ مِن الأَبْصَارِ آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند؟ سپس میان آنها پیوند می دهد و بعد آن را متراكم می سازد؟ در این حال دانه های باران را می بینی که از لابلای آن خارج می شود و از آسمان از كه که آن است دانه های تگرگ نازل می کند و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان میرساند و از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می نزدیک است درخشندگی برق آن چشمها را ببرد یقلب الله الليل والنهار ان این ذلك ذالک لعبرت خداوند شب و روز را دگرگون گون در این ابراتیس برای صاحبان بسیجت. و الله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه و منهم و منهم من يمشي على رجلين و منهم من يمشي على اربع یا الله ما الله علی كل و خداوند هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید گروهی از آنها بر شکم خود راه می روند و گروهی بر دو پای خود و گروهی بر چهار پا راه می‌روند خداوند هر را بخواهد آفریند زیرا خدا بر همه چیز تواناست است. لقد أنزل آيات مبينات و الله يهدي من يشاء إلى صراط ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر کی را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك أولئك بالمؤمنين آنها می گویند به خدا و پیام بر ایمان داریم و اطاعت می کنیم ولی بعد از این ادعا گروهی از آنان روی رویگردان میشوند آنها در حقیقت مؤمن نیستند و دعوا الی الله و رسوله بینهم اذا فریق منهم, منهم معرضون و هنگامی که از آنان دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند ناگهان گروهی از آنان روی گردان می شوند. و این لهم الحق یأتو ایلیه ولی اگر حق داشته باشند و داوری به نفع آنان شود با سرعت و تسلیم به سوی او می آیند. افی قلوبی مرد ام ام یخافون؟ ام یخافون این یحیف الله علیهم و بل اولائی که هم الظالمون آیا در دلهای آنان بیماری است یا شک و تردید دارند یا میترسند خدا و رسولش بر آنان ستم کنند نه بلکه آنها خودشان ستم گرند إنما كان قول <سؤال> المؤمنين <سؤال> اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند تنها این است که میگویند شنیدیم مو اطاعت کردیم و اینها همان رستگاران واقعی هستند و من اطاعت الله و رسوله و یخش الله و یتقیه فاولائک هم الفائزون و هر کس خدا و پیام برش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد چون این کسانی همان پیروز مندان واقعی هستند و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون قل لا تقسموا طاعتم معروفه این الله خبیرون بی آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرماندهی از خانه و اموال خود بیرون می و جان را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می کنند بگو سوگند یاد نکنید شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه چه انجام میدهید آگاه است قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل وما عليكم ما حملتم و تطیعوه تهتدو و ما علر الا البلاغ المبین بگو خدا را اطاعت کنید و از پیام برش فرمان برید و اگر سرپیچی نمایید پیام بر مسئول اعمال خیش است و شما مسئول اعمال خود اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر پیامبر چیزی جز رسندن آشکار نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لا يستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم في يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون خدابند <تصفيق> به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آینی را که برای آنان پسندیده پا بر جا و دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل میکند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند و اقیموا الصلاه و اتوا الزکات و الرسول و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول خدا را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارو و النار ولبئس المصير. گمان مبرد کافران می از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند. جایگاه آنان آتش است و چه بد است یا ایها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 طوافون عليكم بعضكم بعضکم بعض كذلك یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم ای کسانی که ایمان آورده اید بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیدهاند در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند پیش از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهای معمولی خود را بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء، این سه وقت خصوصی برای شماست اما بعد از این سه وقت گناهی بر شما و بر آنان نیست که بدون ازن وارد شوند و بر گرد یکدیگر بگردید و با صفا و سمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند و خداوند دانا و حکیم است و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذن فليستاذن كما استأذن الذين من قبلهم والله و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند همانگونه گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می گرفتند این چونین خداوند آیاتش را برای شما بیان میکند و خدا و القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن نجناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة و این یستعففن خیر لهم و الله سمیع علیم و زنان از کار افتاده ای که امید به ازدواج ندارند گناهی بر آنان نیست که لباسهای روین خود را بر زمین بگذارند به شرط اینکه در برابر مردم خدا رائی نکنند و اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است ليس على الأعمال حرج ولا على الأرجح حرج ولا على المريض حرج ولا على ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أو بيوت امهاتكم، أو بيوت اخوانكم، أو بيوت اخواتكم، أو بيوت، أو بيوت اعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت اخوالكم، أو بيوت خالاتكم.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 تحییتا من عند الله مبارکتا طیبه كذلك یبین الله لكم الآیات لعلكم تعقلون بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست که با شما هم قضا شوند و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان خانه های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود بدون اجازه خاصی غذا بخورید و همچنین خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های یا خانه‌های های, های تن، یا خانه‌های های خاله های تن، یا خانه ای که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی یا جداگانه قضا بخورید و هنگامی که داخل خانه ای شدید برخیشتن سلام کنید سلام و تهیتی از سوی خدا بند. سلامی پر و پاکیزه این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می کند باشد که بیندیشید اینم المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله و اذا, كانوا و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمی روند کسانی که از تو اجازه می گیرند به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند به هر یک از آنان که میخواهی و صلاح میبینی اجازه ده و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است لا تجعلوا دعاء رسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذین يتسللون منكم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِیمٌ صدا کردن پیام بر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان میشوند. و یکی پس از دیگری فرار می کنند میداند پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه ای دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد الا قد يعلم ما انتم عليه و يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملو والله بكل شيء علیم آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمان و زمین است او میداند آنچه را که شما بران هستید و میداند؟ روزی را که به سوی او می میشوند و در آن روز آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می سازد و خداوند به هر چیزی داناست.